بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب الالمین و صل الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللہ تب دائم و سعال اللہ حمد در باقی خودجیت شهرت فتوایی بود از خانون که به اصطلاح چهارمین موضوعی که پایل به خودجیت زن است. چهارم شجیت شهرت شهرت فتوایی و از که بزرگان از خواب متاخر ما همسال مظمون و به این استاد شهرت رو به سه بسیم تقسیم کرد. شهرت در روایت که یوسفی حافظ شده در برابر معروف به تعبیرهای بین علما جزء مرججات می شه در باب حجیت خبر در باب تعارض گفته میشه اصلاً من صادران از هرچند خیلی از قضایا به عنوان معروف و مشهور و متداول و مقبول و این جور حرفا صحبت میشه با اینکه اینها واقعیت علمی ندارند درست نیست از در مراجعات علمی حالا حتی عده هم از بزرگان اهل سنت و ریده کتابی نوشتن مثل دوبتالقواست اشتباهات ماجر و علا لسان خواست که کتاب کتاب هایی نوشتن راجع کشپ از احتباس بیل مشتور علا خیلی از اشیاء مشهور است، دلایی که اصل اساس درستی نداره. خوبه این بحث موضوع اخروی که انسان یکی هم همین مقبوله عمر بن حنظله که خیلی معروف شده بین علما که سنداً چیزی برشون نیست، لکن مقبول است، یعنی قبول شده. روشی که درباره عمر بن حنظله تو مفعی زوره ارزش نداره اون که قطعاً باطل اون کنار اون ارزش بحث نداره، اما مقبوله عمر بن حنظله ارزشش سابقا در خلال بحث ها سه قطعه داره یعنی این سه تقسیم به سه بخش میشه اومدن. اولش اینه که در مسائل مراجعه ملاب... بین من اصحاب بین ها مناظرتون فیدین امیراز که امام میفرماید به قاضی یا به حاکم یا به والی ما نکنن و به خرید مراجعه کنن که اصطلاحا نوز فقیه هدش استظهار میشه این بخش اول رقایت ما ارز شد که این بخش اول در کتاب صدوق فقیه نیامده خسون هم فقیه در بقیه کتبش هم این دواست نیامده نه در فقیه هم نه در بقیه کتب صدوق بخش دومش اختلاف دو فقیهه که اگر تا فقیه بودن ایک فقیه اینجور بود یا اون اینجور بود که امام می به اینکه که اعلم و افقه تعلم و افقه هم و و اولا مراجعه بشه این بخش دوم در کلام فقیه آمده هم کلیف و هم کتاب بخش دومش هم برای شوالدزهان آمده به هم کتاب محقق مکلینی و کتاب شیخ احسان الله این را الان فقهای ما عادة در بخش اشعار تحلیل بحث می کنند. ترکیل علم و اگر در علمیت مسایل تریز اوره این که دین دی ای در شناخت تقلید اورا دلیلش همین محبوبه عمر بن خزرج چون اورا در روایت آمده است. اون والا او آمده اینم اونجا آقایون غالبا بحث میکنن به این شرط البته مورد روایت در دو حدیث که میخوام بهش مراجعه کنم در بحث ولایت اما اولین که تضمین دادن به باب تقلید تغییر در از به حساب ولایت به خصوص مت به نیشون تعمیم دو دن اصلا این تعمیم درست هست نیست اصلا خود روایت مفادش این هست نیست چاش اینجا نیست من نمی کنم اینجا با این بحث امام می که به کدومی می از اینها در زید عبارتشون بر گردن به اینکه که مثلا به اینکه که اون فقیهی که مبنای علمی شید و وقت میگه این های ما که اختلاف زن در کوفه اعتمادشون بر روایات روایات با هم اختلاف دارن ما چکار کار کنیم این بخش ثورم مقبوله عمر نهنزله مربوطه به بحث تعارض قرار داره بودن که دلیل دو و روایت بیز و فقید, فقید بشترم تو کردن اگر تا آرز دو کنیم پس مقبوله عمر نهنزله در حقیقت سه بخش داره یه بخش اولش که مربوطه به باب به اصطلاح نوز به یا قضا ادهی گفتن فقط قضاوت از اشتر میگن چون داره به این تو و حالا این حاکمه ادهی گفتن مراد خصوص تقلیده. تقلید تقلید از مشکل. اده از گفتن تقلید و قضا ادهی گفتن تقلید و قضا و حکومت و ولایت و اداره جامعه حالا من بارد اون بحثش نمیشه از این سه بخش این همه که شده در کتاب مبت آرز به بخش سه بوم روایته بحش سه روایت, روایت رو اصحاب زدن به بحث تا و ترجیحاتی که در باب تا آمده، آنست این راجبه اجمال روایت از سر این روایت رو مثلا مرمون صدوب اول شنعه ورده دوم و سوم شعه ورده در کتاب علم همه شعه ورده شبه هم ازش تردو اشتاد بخلی. اما تو کتاب از آبه و هم فقط اولش رو آورده فرقمو کلینی دوبار آورده یکی از نقاط اختلاف کلینی و صدوق هم همینه کلینه فقط اول رو او آورده اصلا اول دو دوبار آورده یه بار تنها اول او او فقط اول آورده بقیه رو نای آورده بقید بخش اولش که ولایته توی جلد هفتون پیشان آورده مرموه کل... صد... صدوق اول رو هم آورده دو سوم رو آورده مردی میشیخ طوسی از دو مصدر هر هر سر با هم آورده تفقیق نکرده یعنی هر بار که آورده هر سه رو هر سر قسمت رو با هم آورده این به مسئلی که ما الان از روایت عمر به حنظله داریم که تمام بحث تاریخی و بحث سندی و خیلی موارد درآورده که ان شاء در محل خودش بحث تعارض و لزوم تفقیق ما مطرح شد ایشان چرا میکنه. میکنه چرا تخفیف میکنه گایم حتی وقت دو سالتر نسوزی یک جانی و نسوزی یک جانی تخفیف اتوب دری هم میکنه چرا در اینجا؟ از سویی که این روز تخفیف کرده خودی که و بین دو مدتی که در اولی اختلاف خیلی کمیه، اون دقت از دراپر که دقیقا مثل هم باشه نیست، یه مختصری اختلاف. چون وارد این بحث چون چند جانی نیست توضیحاتش در محل خودش مطرح شد. الان که به اون این وقت اینی که ما میگیم مقبول بودنش محل کلامه این از این جهن اولا مثلا صدوق بیاد در بین روایات همین مرد جهات را حمل بکنه اینو نهیدیم صدوق چون در این روایات مبارک اول شهرته الان اگر مرد جه در باقیه آرز مرد باشه بعدش موافقت کتاب و سنت البته عبارت ای این کمی گیر داره شهرش رو بعدش مخالفت با آمه است بعدم توضیح میده مراده از آمنه روایت آمنه نیست اون جدر سیاسی یعنی حکومت حکومت دیگه دست سنیا بود بعدشم آخرش میگه ازن فعرج حتی طلقه امامه که اصطلاحا آن آن بشونه توقف یاد مثلا احتیاط توقف مثلا ازن فعرج حتی طلقه این خلاصه این روایت در مقام زیرش اون دخشت ثبومش اینجوری خب مثلا مرموم سروح در کتابهای خودش وقتی حدیث متعارضه نمی‌گی خود اشهره به شخص می‌کنه وقتی نمی‌گی موعظ کردیم همین که صدوق نمیگه معلوم میشه مرجع قرار نداره چه نه در صدوق در چند مورد در فقی وقتی تعارض بین روایات میان اخذ به اهدس می‌کنه داریم تو مرجع ها غیر از این قیدی رو نداره به اصطلاح اخذ به اهدس یکی از مبانی صدوق در مرجع‌هاست یه قیدوموره در فقه تصریح میکنه مثلا حدیثی بر کلینی میاد دیگه relatos من به این حدیث فکرو نمیدارم چون مربون صقر از امام هادی معصکری اما حدیثی دارن که از توقیعی داره در اونجا این معارضه چون احدث از رواه متأخر اون رو قبول میکنه این مبنای سدوع اهل احدث مثلا اهل احدث مثلا توی روای نه ما بده ثروت آورد نه انجیل احذر به احدث نیااده کلا در از یه صدوق روایت معلل رو بر غیر معلل مقدم ترجیح میده میگه این روایت قبول می کنم چون معلل مورد از روات معلل مثلا یک روایت بیادی که نافله رو غذا بکن مثلا چون خیلی ثواب داره بود مثلا اندالله یک روایت به نافله رو غذا نکن با یکیش علت داره کش نداره و معارض ند این میگه اونی که معلله مقدم این تقریم ماکان معللا در روایت نمازده داره اصلا هیچ روایتی نداریم در معلل هیچ روایتی نداریم اطلاح امروزی ما استقسانی زوگیه شبا میگن روایت معلل که انما دو مرتبه به وقت گفته یکی در معلومه که در علم وقتی گفت لا تشتر خند پرینده و مسکر رو که انما دو مرتبه بفت لا تشتر خند موسکر یکی بران خند یکی میگن روایت معلل یعنی نقطه نقطه زوگیه به اطلاح ماها تا نباشه مدیعه له اسمش میذان بعضی احلی اوغلاوی چیز اضافی نوثه اوفیزو صدوق بعضی از ها حدیث رو که معلله بر غیر معلل مقدم میکنه. با اینکه این تقدیم معلل نه در روات اوغلا در انضم در هیچ روایتی نی عرضه به عدد در, در اما اخذ به معلل در هیچ روایتی نی عرضه پس مثلا صدوق واضح نیست که این کار کرده باشه از ظاهر عبارت کلونی در مقدمه کافی ایشون قالب قالب ترجیح نیست این نکته‌ای است من عرض کردم در ذهنتون باشه مبانی اصحاب ما البته سنیام دارن اصحاب ما هم مرتب مروتل کردن مقداری با شواهد زمانیش بیشتر سر دارن کم بیش بیشترش حل میگن مبانی اصحاب ما در تعارض اصولا شواهد هست این همش در ذهنتون باشه یکی <تصحنت> تساقطه که به اصطلاح حالا معانی مختلف داره من جمله مثلا مبنای یونس و الرحمن ما اون نظریه که مخالف با کتاب و سنته اصلا طرحش می‌کنیم حجت نیست یا ببخشید تصادف نه مسلک طرح شده مسلک طرح مسلک دوم دو که ظاهر عبارت کله نیست حالا مبناش واقعا مرادش این است که مبناش در بحث ارث تاخیره که ما اگه از دادت رواز داشتیم حتی یک روازش مرجعه داشت مثلا مشهور بود به اصلاح این مرجعهات مستحبه الزامی نیست مبنای تخییر از قدمای اصحاب ما ظاهر عبارت کلینی اینطوره از متاخلین اصحاب ما در کفایه مبنایشان تخییر ای از موافقت کتاب و سنت و غیر از موافقت مخالفت معامل چیز دیگه که مخالف امن نبود موافقت حجه نیست یه تهاوز این مسئله در غیر از اون دو مورد اگر هیچ مشهورتی باشه مشه مخیلی این مراجعات مسحبه به اصطلاح تعبیرویی این رو ما داشتیم ترکین پس اول طرحه طرح این است که ما اصولا خبری رو که شواهد کتاب و سنت نداره اصلا قبول نمیکنیم. نظام مكتبه طرح اونجا تا اونجا میره که حتی اگر معارز ند بود سرد کنیم خب بهتره اگر خبر موافق مضمونی با کتاب نبود ولو معارضم نداشت تحرک میشه یا به معارض نداره این مبناه اول شاسنس این مبناه مثل یونس و نبدالرحمنه لذا روی این مبناه خیلی از رواید تحرک شده بود روی مبناه یونسه اینی که در اون رواید داره که قلتول یونس یا ابا عبدالرحمن ما اشد به کل اهل الحدیث ما اشد به کل اهل الحدیث این امکار یونس به خاطر تهر کردن روایات بود گفت این روایات شواهد کتاب و سنت ندارن با سر بشه این پیش و ها مرکوز بود چون من توضیح دادم در برس بودست که گمیه ها به شواهد مذهب بیشتر عمل میکردن یونس به شواهد دیگه بیشتر عمل میکرد این نتیجه اختلاف دو مسئله که ها به شواهد مذهب یعنی میگفتن این روایت در کتاب مشهوره از حالانه ها قبولی. یونسون گفت نه روایت رو با کتاباشون حساب بکنه. یعنی به تعبیر بنده که دیوونه عرض کردم شواهد دینی طبیعتا بین شواهد دینی و مذهبی این اختلاف پیش میاد نه اینکه طبیعی شدیم ملازم موضع کردیم ارکان اون طبعات این که باره فرغشت موضع دیو خودشون باید اینجا مشخص بکنن به کدام شواهد میخوان بیشتر مراجعه کنند روشن شد که که دوم بود که اصلا ظاهر کله نیست و ظاهر عبارض کفایی مثلت سوم بان ترجیه مذر بخواهد حساب تاریخی میخواهد بگرد مسئله سه بان جمعه همون عبارض مشهور از جمع و مهمه همکن اولام نتر همون عبارضی که ایش به این در بین اصحاب ما حتی غیر امامی هم سابقه داره چون نمیخواهد آنجا باز بحث تا عرص بشن که چهره بارض این مسئله چهره توسیه البته این مخلق جمع هم کم و بیش در عبارات بعد از شیخ طوسی به خاطر عظمت شیخ توسی و نفی آروس تا حدی ملموس یعنی انصافا تا جواهر تا زمان خودمون سعی می‌کنم مهما امکنه البته مهما امکنه شیخ رسیده رساله به عنوان اینکه حتی اگر مقبول عرفی نباشه انصافا نه بلکه یک نکته‌ای در همین شواهد منان الله پیدا بشه از این طرف و از اون طرف پیدا بشه برای این روایت به اصطلاح این معنای جن رو قبول بکنه اینم مسلک سوم مسلک چهارم ترجیحه مسلک چهارم ترجیحه به این معنی که مسلک چهارم تقریبا بین اصحاب ما از زمان علامه به بعد آمد اینم میگه این از اون کاره بود که وقت علامه تون بحث اشمار گفتین تو بحث خبر نتیجه حجیت تعبدی خبر بیشتر تمایل به ترجیح شد درست همین شما ما توضیحاتشو ارز کرده حجیت تعبدی خبر معناش اینه معنی حجیت تعبودی خبر اگر دارای یک معیار باشد بودن حجه وقت این معیار در کلمات اهل سنت قالبن ادالت راوی بود فا در کلمات اخواری ها شهرت کتاب و مصدر بود اگر مصدرش مشهور باشد پیش مرموم استاد و ساقت رابی بود این اسطش حجیه تعبدی است اگر دو تا رقایت ما داشتیم اینا فرضت آرز رو می توان بکنن شون ممکنه از هر دو خبر رابیش عاده باشه هر دو خبر رابیش تقه باشه یا هر دو خبر در کتاب مشهور باشه لذا باید مثلک حجیه تعبدی مختزای قاعده هر دو خبر حجت لیکن از دیگه چون میدونیم تعبد به دو خبر متناقض به دو امر متعارض ممکن نیست تعبد که معهود نیست به دو عمر متناقض خارج نه خواهی به یکیش خواهد شد و گفتن اگر در شد به یکی بشه اون رو میگیریم که برگیگری ترجیح داشت این مسئله ترجیحه. و لذا ارز کردیم اهل سنت حدود بیش از هشتان مرجعه بکردن هیچی یک از مرجعه مرجعهات اهل سنت منصوص نیست هیچی یک حسن من سابقا توضیح دادن اهل سنت فرض تا آرز رو از تیغمبر نقل نکردن که حالا بحث ترجیح برست فرض تا برست. ما در روایات اهل سنت نداریم که به رسول الله عرض کردیم شما پار سال یه جور فرمو دیدی؟ امسال این این سنن گزراه اصلا اینا سنن <تصفح> اصلا اهل سنت تعقد معناش اینه که پیغمبر اکرم یه راهی دو فرمودن بچن برای حل تعارض اصلا نذار تعارض ندارن که حلش بشه ما داریم به امام صادق عرض می شما امثال اینجور کاری پارسال کار اینجور فرمودید اصحاب ما اونم خدمتونی اده شما این نرمید اده و امام صادق هم راه نشون میده درسته این معناش اینه که امام صادق تعارض را قبول داره یعنی امام صادق میدونن که دو مطلب گفتن. خوب و رضا امام می کنم کلامی که مطابق با حکومت و اوضاع وقت گفته شده تقییه یعنی امام قبول دارن که دو جور کلام گفت این روایت همارم نهنزله نفتش اینه که امام تعارض قبول دارن. این درست من دو جور صحبت کردم. یک جا اینجور گفتن و یک بیگ در از اصحاب اینجور گفتن بیگ در از اصحاب اینجور گفت این که امام میاد در روایت شما را رو نه طرح سوال میکنه یعنی امام تعارض قبول داره دقیق فراموندید اما در روایت اهل سنت نیست اهل سنت رو قواعد عقلایی قائل به چیه میگن اگر دو تا خبر بود هر دو حجت بود اگر بتوانیم در یک خبر رید بیشتر قرار بدیم و در خبر دیگر کمتر این دو تا که مقایسته بکنی اهدوها ما بلقیاس و آخر لاری به فی باید بلقیاس نه فی نفسه یا لا اقل ریدش کمتر باشه اشکالش کمتر باشه این ترجیح داره موردش از ترجیح اینه تصاویه یعنی؟ نه اگر تصاویه شد اومد تا آداله نظام باق رو کبتن تا و ترجیح تعادل فرض تساوی ترجیح فرض اینه که یک طرف مرج نمی‌کنه بر دیگری اون تعادلی که در فرمای فرض مقابلشه بخوا ما نگاه میکنیم که اینو میگم مقبول نیست مقبول نیست به این معنی این تعابری که در روایت آمده در کلمات صدوق نیست در کلمات شیخ کلینی در مقالون ظاهر تا... تازیشان تا ایشون این روایت رو تقریباً بعد از علامه شاید میشه گفت به سر سال یواش شواش اصحاب ما قسمت میشه تو تا آرز بردن پس اینیشی یعنی این روایت مشهوره نه بله قسمت اولش رو اصحاب ما به مناسبت قاضی منصوب و مشهر قاضی زده در اینه و مشهر نفسی به این مناسبت رو بردن مثلاً سدو مرموشه به توسی در کتاب و عده بحث تعارض داره اصلا درباره عمر رو حنبل نگاه نمیکنه اینکه ایشون دو خود خودش رو تو ورزه خامه پس این ذهنیت که این حدیث مقبول است این به این ذهنیت که مرحوم کلینی اون رو کامل آورده صدوق اون رو ناقص آورده شیخ طوسی هم کامل آورده به این جهت بله اما اینکه کل روایت مقبوله باشه و با اون معنایی که الان این رو ما نمیبینیم مرحوم محقق روایت رو رد می به ضعف اصناد در بحث سعاد و هم باشه در معالم میگه استنادن یا روایت زریفه که ما روایت امارم پس این بحث که مثلا این روایت در بین کلمات از خواب ما تلقیه به قبول شده حتما مرا باید این باشه معظم این روایت در مصادر اربعه آمده در کتب سراسیان استرسا تو زهنم نیست تحضیب تو هم است... و استفسار فکر نمی کنم کنم و فقیه و کافی اما اینکه عمل عمل بشکرده باشن و عملا تو مقامت آرز خودشیخ تو مقامت آرز, مقامت آرز ترجیح می خودش خودشیخ رو جمع میکنن خودشیخ با این در این رواد اولش ترجیح به خودش دارد این کار نمیکنه. کنه این که ما میگیم مقبول نیست خوب دقت بکنیم یعنی وقتی به بحث تا عارض بر این نیست که هر شاد درصد نورد درصد علمای ما رو قبول کرده و به این رواد فساد داشت تو اصول آره بله مقبول به این معنا این راجع به کلمه مقبوله البته نست راجع آهای خویی در اینجا در سندش اشکال کردم، این چیزی دیوز من گفتم که ایشون میگن که روایت اسمان یزیدم نخلیفه این روایت یزیدم نخلیفه روز عزیز خلیفه اینه که قلت الله عبدالله این ناماره نهنزله اتا ما هم که به وقت فقال علیه السلام ازن لایمزه با علیه اینا یه چرزی دار جاشه جنس این جنسه من بعد آقای خوی فهمون خود عزیز بن خلیفه توسیق نگیم گنزریفتون به نفساشون خود عزیز بن خلیفه توسیق نشده خود عزیز بن خلیفه توسیق نشده البته سفان ازشون نقل میتونه آقای خوی نقل رو کافی سفان اصلا که اعتقدر من یه نکته تاریخی از رو هم برد باره به بحثه دیگه مروشیم تمسا که به این روایت در وساقت ممارم نهنزله این هم تو کتاب رجالی ما سابقه نداشت اصلا خوب دقیقه میکنم تمسا که به این روایت ازنلا یک ده تا اونجایی که حافظه من حالا یاری میده در علم و اندالله ازنلا این بار در قرم و ده هم شهید ثانی عورده این محرم داره. میگه الا استفاده تو مثلا مضمون وثاقتش رو از یک روایت دیگر است نمیبره میگن مرادش این بوده مرادش وازیع و خلیفہ است از اون وقت این بحث میشه بین اسحاق و ما مبدعش هم تا اونجایی که من میگم مرحوم شهید ثانی در قرن دهم ده خود عمر بن حنبل در قرن دومه <تصفيق> توثیقی که علیشان استفاده کردن تو قرن دهم ده که شهید ثانی به قول خودش اصلا نمرده اصحاب اوضان گفتن مرادش اینه من روایت اخرى، من روایت منکان اخر مرادش همین روایتی از یزید خلیفه است طبعا از اون زمان تا حالا اصلا بحث شده هرن یکی وقتی مطرح بشه طبیعتا روش بحث شده که اولا این عبارت چی جوری بخونیم اذن لا یک چیزی وا علینا لا یللا یک و وا علینا میگه میگه خیلی دیگه مولانا قضی گوش خطاش کار صحبت نکردی صحبت های زیادی صحبت که اصلا متن روایت چجوری بخونیم خود یعقوب بن حلیفه خود این روایت هست که یک شرحی داره که ما در مباحث دیگه مطرح شدیم البته اگر این روایت ثابت بشه دلالت برای عزمت شانه عمر بن حنظله کنه نه این مقدار الا لایق رو علینا یک یه بخش طولانی خارجی داره که جاش اینجا نیست نه اینجاست و نه در کلام استاد و کلی طولانیه اون رجالیه نه هست بحث دیگه‌ای که اگر راست باشه بله مشو بلا عظمت عمر بن راست اگر حدیث درست باشه دیگه این دوره صحبت نمیشه که کلی فولان اسم باشه این راج به این پس یک مطلب راج به مقبوله بودن راج به آخویی هم عرض بکنم آخویی تا مددها مقبوله رو قبول داشته ها. اشتباه نشه این مددها اگر کتاب حالات او چاپی خود ایشان تنقیح مرحوم قاضی حنبی قدس الله نفسه های مرحوم زنده در تنقیح جلد اولش اواخر جلد اول یه عده از خروج ولایت فقیه هم توش هست. یه اشاره تنقیح مابون سید که مثلا فقیه میتونه نسب قیم بکنه. اونجا آیهودی تمسک می‌کنن به آیات قرآن نازله. بعد میگن تمسک درست نیست مثلا. الان روایت و اونجا قبول دارن. و در چاپ های بعدی که تنقیح شده حاشیه یکی بله عدل استاد از این معنا و بناشون میشد که روایت امام قبول نمیشه. الا مبنای اولی ایشا این بود که روایت رو به خاطر مقبوله قبول بکنه بعد دیگه بناشون شد که قبول نکنند و در این کتاب مبانی تکمیل منحاج که ظاهرن به قلبه ایشانه در اونجا هم ایشون دارن بحث رو به حتی توی آزی منصوب هم توی بحث صحب هم به مناسبت سبوت حلال محکم اینه ما بودیم این خدمتشون دیده همسیشون بلده پرقیه مت اشکالشون هم همینه که روایت امرو نهانزله امسای امرو نهانزله در قاضی منصوب قب... قبول میگه با... قاضی تحکیم منصوب با که میگن سند لذا دو مرحله مهم بلایت که قضاوت باشه و خود اداره جامعه و مهم استاد قبول نداشته کل بلایت فقیه رو قبول نداشته این راجع به روایت امرو نهانزله وقتی اجمالی تفسیرش این شما داشته ای بطول بکشه جدیه و اما اشکال اساسی دیگر استاد یا استاد یه اشکال دیگه دارم من این حوال سهت میخونم بله ایشو بگید ولیکن تحقیل ادم و کانوها من المرجحات از مرجحات نیست از المراد بالمجمع علی بله فی المقبوله الخبر لذی اجمع علا صدوری خبری که اجماع شده که از محسوم صادر شده فیکون اکون المراد من الخبر المعلوم صدورو اون خبری که افعاً صادر لقولی علیه السلام فی این المجمع علیه داره بفیک بعد از این مطلب امام اون حدیث محروفیست در رسول الله نسبت دادش در خدا رحل سنت هم هست امام اون حدیث رو هم در ما نحنفی تطبیح فرمدن سوال راجعه بود که از شما دو جور بباید شده بعد از این که امام فرمزد به مشروع مراجعه کن یه حدیث روز از پیغمبر در مطلب دیگر این حاراتی به نیست امام اون کلام پیغمبر رو خودشون پیاده خودش ثامن اینه که امور سه لازم امر ون بیان روشن و فیو تبع امری که بازه و امر ون بیان غیرو و فیو شد و امر ون مشکل است. اینی که میخوام بعضو مشکل قراره از هم کنن با به افعال و لوک متعددی. از ازیال باورت لازمه. اشکل لازمه متعدی نیست اشکال امرو اشکال این مشکل شد. نه اینکه اشکال امرو مشکلم به سیجی خالو و امر مشکل و یورد به حکم او اله بعد آقایان خود میخوانند که ان الامام علیه السلام سبب الامر البینه روشتو یعنی اون روایتی رو که از پیغمبر بوده تشقیق فرامیدن ان الخبر موج علیه این تضریحا تعبیر تطریق خودی کردن چون سوال اینه که آ کلمات شما متعارضه به اون حدیث امام میفرمایند اون حدیث پیغمبر هم قابل تشریحه اگر مشهور ده نفر برای نقل کردن این به تعبیر پیغمبر جزه امرون بیان و رشتو هست نه امرون بیان و و نه امرون مشکل جزه اون دو, دو تا نیست این جزه امرون بیان و رشتو و زنیاکون الخبر و خبر الله ساقتن هنال حجیه بی نفسه اصلا اون ساقته لمادل دل طرح خبر الخبر کتاب و, السنة. و کتاب و سنه وقت ایشون کتاب و سنه تو این معنا گرسن و المراد به سنه کل خبر مكتوع دل بله. کل خبر صدور مراد از سنت اون خبرهایی است که خب وقتی خبر مجموعی مكتوع صدور میشه میشه چی سنه خبر شاذ میشه چی خلاف سنت لا خصوص النبوی کما ظاهران مراد خصوص النبوی نیست و لا البته اینجا ایشون مراد به سنت و محکی خبر گرفتن اکثرن چرا یک تسامحی بینه علمای اهل شیعه سنی سنی یه مقدار سعی کردن جمع جور کرد و ما هم که کاملا جمع جوره. تو عبارات اصحاب ما یه تسامهی در اطلاع کلمه سنت شده گاهی اوقات مین سنت مرادشون خبره این اصطلاح نیست اشتباه نشد آنه من بخیه مطلبی رو میگم یا که گم نیمیخوام مثلا مرموم آی امینی رحمت الله کتاب و تاریخ و سنه. <تصفيق> پوشه خب این کسی که به اصطلاح و اصولی آشنا بشه عنوان مضحکی عنوان غلطی از این عنوان ایشون سنت رو عنوان خبر گرسون سنت اون حکمیست که پیغندر جل فرموزن خبر حاکی سنت اصطلاح سنت اینه لیکن خب ایشون پشتی که دارشان نیمشن شما میکنن خب مشکل هم از یک کتاب این اصطلاح باطلیه استعمال غیر صحیح باید میشن مثلا فلکتاب و تاریخ ولد اخباری و خبر حالا بعضی از اون علمای رساله چنین برای که جمع ما بین کلام معصوم و غیر معصوم بشه ولی اثر اثری که می‌گنن مراد اونی که معصوم شده که منقوله شامل حدیث معنای اصطلاحی اگه بگیم حدیث کلام خصوصی و حدیث که خصوص کلام امام نیست سخن حدیث خودیش در در حدیث چون انساناتی صحبت می‌کنه پشت سر هم یحدوس شی از شیئا از این یادش حدیث میگه. علا یا من نمیخوام واضع مانی لغوی این کلمات هست اون صحیحش باشه شدیم که کتاب و تاریخ ولی اثر به جای اثر از سنه این مقداری اشتباه میشه ولی مراد نه کل کلو خبرم مفتوق این اصطلاح نیست حالا نمیخواستم چون این کلمات هستاد خیلی توش خراب بذاره نمیخواستم اینجا بگرد در هر حال این اصطلاح نیست اصطلاحی که میگن نالا نقول و قول خالف سنت نبی کامی که دائره چهرش در اختیار رسول الله هست. سنت این کتاب مثلا فرض کنیم این, این که اصل نماز به خداون قرار دار اما این مثلا. که در رکوع هم خبرکه و مراکی اینه مثلا فریضه اما اینکه که در رکوع فلان زکر دیگه موطن سنت اما میسه سنت به چند تخصیم میشه تخصیم اساسیش به سنت الزامی و غیر الزامی بله یعنی سنتی که انسان حق داره تر کشید سنتی که حق داره که استرام موجب بشونی این که ایشون کل خبر مقدون صدور اسمش سنته لا خصوص و نبوی نه خبری که از پیغمبر اصلا خبر اسمش سنت نیست چه نبوی چه غیر نبوی و مراد از شواهد کتاب و سنت یعنی شواهد احکامی که خداوند در کتاب در یا پیغمبر در سنتشون استرام سنتشون متاسفانه در کلمات همان بحث مثال زد سنگ جه بازار کوی بزرگان اصحاب ما بعد استعمار شده یعنی در اصطلاح اصولی وقتی روایات ما درست بکار کار تو روایت ما سنت در نه سنته اشتباه نشو تو کلمات اصولیین ما این اشتباه آمده این مثلا این نشه المراد سنت کل خبر المقتو اسدو این درست نیست این درست به هر حال یک مقداری ما محدودیت داریم چون در یه علم معین صحبت میکنیم هی باید توضیح بدیم سنت به اصطلاح ماز اونجوری در کتاب اوصیا گفت سنت واضحه گفت کتاب واضحه سنت هم واضح. اما اینکه حدیث زراره رو سنت گرفتن حدیث که نه نفر کاری سنت این خیلی خلاف مصداق هست ده, ده نفر یک حدیث کردن یک نفر یک حدیث اون میشه سنت این میشه مخالف سنت این خلاف ایسفلاحه. اون یونس عبدالرحمن هم که بیتره گفت به شواهد کتاب سنت برادش این نیست و ایلا نا نقول و قولا خالت ببینید در یونس از امام رضا یا یونس ان کلام اولنا به کلام آخرنا و این کلام یوش به کلام اولنا و ایلا نا نقول و قولن خالت قول رد بنا و سنت نبینا سنت من خودشه بگذارید این در اصطلاحات دایی میشه گفت اما خب چه دایی دادم خلاف مصطلح صحبت باشه. ما نتیجه خلاف مصطلح این است که ایشون خبر مخالف با سنت و طرح کردن مراد از حدیثی که در نفر نیستش معنی مراد از سنت یعنی جعل رسول الله صلوات الله و平安 برک. مثلا اگه خبر آمد گفت شما در رکوع لازم است ذکر معینی گفت خب این با سنت مخالفه مراد سنت اینه عذری اومد سؤال لازم نشین درکتی که پیغمبر فرمودن چون اصل نماز ذو حرکت ذو حرکت پیغمبر از این لازم نیست الان انجام بده میگن این مخالف با سنت اگر گفت نماز نخون میگن مخالف با کتاب بعضی عرفا در اویسن شیعه فی مراد در علی احمد که ما کار اینو چه ایشون برداشتن فرمودن مراد از سنت خبر مسموع علیه خلاف مصطلح است تماما یعنی کلا از اصطلاح خارج از کنم که من مصطبه علیه السلام هسته و عام اسلامی خیلی کار نکنه زن نه در نظر حدیثشون نظر حتی الان من نمخواب خودصیت رو بکرم با حس و خودصیت میجه به اول به اصطلاح دومش یه مقداری بعض از روبات احل سنت داره یه مقدارم اون آقایی که نوشته بود من گفت ما به تفصیل بیشتری هم نکنم خدا اصلاح هر سکرم مثلا این آقایی که اسمش در اینجا آمده و لذا منشع شده که بعض از موارد در کتاب رجال خودشون یه نفری که مثلا از بزرگان اهل سنت اشتباه شد باید نفرش چیه بعد نتائج خنده داری برش متحده شده که می بخونم رو ارز میکنم جای دیگه برها بعد ایشون گیر میکنن که اگر سنت یعنی خبر مجموعان علی ولایونافی موازکرناه و فرزرراوی از شهرغلت فی کل کرده ما میگه چون را کل قرار مشهوران. بعد امرل اعمانبل اخد مجبور وذا کل انل قعه به سور اهده ما اینکه ما قطع داریم بهور اگر هر دو مشهورن هر دو اون از تو اما چون با آارن پس میدونیم یک میشه. لا از تزیمان قطع به عدم سورول آخر و میدونمقدردار، این معنی ای نیست که قهر که داشته باشیم دیگری سازه نشده بل یمکنه ان یکون کلاه ما سادرم من المعصوم و یکون و احده ما سادرم در قیان و الواقعی ولی آخرت تقییه ممکنه این طور این اشتال نداره که و زهر به ما بله پس این روایت موردش اینجا نیست موردش روا در جایی. یعنی مورد روایت دست تاروز نیست و به این جهت ما روایت حمل بر ترجیح به شهرت نمی کنیم بلکه مراده از روایت اینکه یکی حججی یعنی که خب در خدمت خود مرحوم استاد یا مرحوم آقای مقرر ایشون کردن حساب میکنیم خب مج문 کلا در دریاضش مج문 چی آدم برون استاد در درس شما فهمید ببینید داره این مسئله روشن بشه از خلاصه ای کلام ایشون اینه که ایشون میگه ای این روایت فرضش در ترجیح و تاروز نیست. فرضش در جای دیگر نیست. در منحس تاروز این انرژی بپرمید. علمای متاخره ما بسمنونه این آزی ها. آزی دارن که ما یه چیزی به نام تاروز داریم. یه چیزی به نام اشتباه الحجه به لاحجه داریم. یا تمیز الحجه به لاحجه داریم. خوب دقت بکنه. یه دقیقی این خبر حجت اون خبرم حجیته نمیدونیم چون, حجت چون حجیت بی چون معیار حجیت در اینم هست را 23 و را است هست اما کدو می‌گیم حجیت واقعی ایست برای ما شواهد حجیت در هر دو هست این رو اصطلاحا میزن تا آرز. و در فرض تا آرز عدله حجیت در مرحله اختضا هر دو رو شامل میشه برای فعلیت به حصال اصطلاح دیگر، برای فعریت اونی که ترجیح داره و مقدم بکن این اصطلاح اما گاه نه بحث تا نیست بحث دو تا کلام نه یکیش میدونی مال امامتیش نیست اون به درک بکنیم یکیش حجت هست یکیش حجت نیست من هم آرزی آباد اینجا هم استاد اشاره ده. اینجا تا آرزز نیست اینجا اشتباه حججب الله و جس مثل علم اجمالیه اینا آمدن این آملا این نکل در اصول متخرشی روشن کرده که ما یک اشتباه حجب الله حجه داریم یک تا آرز داریم برای روشن شد. در اشتباه حجب الله و یکی حججر یک حججد نیز در تا آرز حججر هر دو مجت هست کم تا آرز بذاره ادله تعبود هر داره نمیگیره اون از در ترجیح این ما تا آرز اگر ما آمدیم گفتیم حجت یک اینه این تمیز الهجه الله لاحجه اینو این از اون نیست اما اگر قال شدیم به تا آرز اگر قال شدیم به تا آرز هر دو حجت هست لیکن اونی که فعلا در حقیق اون تعبیر به فعلا اونی که من میتونم به اون و به عنوان یک طرفه اما طرف دیگرم فی نفسه داره خب دقیق بکنیم لذا دو تا مبناست یک تا در مقابلش اشتباه الحجه بالله حجید تا یک چیز اشتباه الحجه بالله حجید دیگره در نتیجه در تا ما ترجیح میدیم ترجیح یعنی چی؟ یعنی هر دو حجید دارند. دلیل حجیت در هر دو میاد در یکی اولام این اسم ترجیح اما در اشتباه حجبه و حجیت ما چیکار میکنیم ما تمیز حجت از لا حجت میگیریم خوب دقت ترجیح. ترجیح نمیدی میگین میدونیدین یکی حجت اونی که حجت اینه اون که دیگه نیست پس ما یک تعارض داریم یک اشتباه حجبه و حجیت راسه نتیجه در درک یا میگیم تخییر یا میگیم ترجیح یا میگیم تساوی چیزی میگیم بیولاغره چون شواهد حجیت در هر دو هست اگر ترجیح گفتید به این معنا که این هم حجیت داره بی نفسه اون یکی از داره بی نفسه دقت این شواهد بیشتر داره بذار ببین این عقل اما اون یکی هم شواهد حجیت داره فلسفه اونجیه اگر معارضه اون اما در و در اشتبال حجت الله حجت یکیه دومی حجت نیست ما تشخیص نمی اگر راهی تشخیص دادیم یکی حجت دیگری فی نفسه حجت نیست خب بخاطر آی خویش بخدا فرما این روایت موردش اشتبال حجت الله حجت بده خب بخاطر بهبارت که لوش ندود حالا که گفتم مراجعه کنی این روایت نا... خود... یا خود آقای خودی در درست روشن در حال هم... شاگر دومه داره بشته روشن شد مراد آقای خودی می فرماید که امام میفرماید فرماید خود به مجمع علیه به نزده بشتر و درده و ده شازن نادر فه این مجمع علیه لاره بفیب. این هم چی یعنی مجمع علیه لاره بفیب شازن نادر فیه ریب. یعنی باطله پس این مناسبه با چیه؟ این مناسبه با تمیز الهجهن لاوجهته. دقیقه سرموندی؟ نه ممکنه هر دو باشه. برضو... به جرد دیگه هجهن نباشه. خود اسلام گسته کرد. دقت چی شد؟ پس مرازهای از که در کردن خیلی و ارسون گروز وقت همون شده فردا من توضیحات دیگه عرض میکنم توضیحاتی کن کافی نبوده باز عرض میکنم پس در حقیقت ما دو باب داریم این اشتباه و هم نشته یکی باب تاروز یکی باب اشتباه الهجه بالله هجه این رو اگر خواستی اول تاروز کلمات آزی آزی ها مفصل داریم که باب اشتباه الهجه بالله هجه غیر از باب تاروزه درست هم مثلا درست. نتیجه ای که گرفته میشه اینه اگر تا باشه یا مثلا تخییره چون هر دا حجت یا ترجیه ترجیه هم معمش اینه که شواهد حجیت در این بیشتره اما اون یکی دیگه هم پی نفضه حجه ده معارض حجته. اما اگر اشتباه الحجه و لاحجه شد نتیجه چی میشه؟ تمیز الحجه و لاحجه میشه ترجیح کش میشه حجت میشه، ترجیح میشه، ایرادش که ثابت میشه، بهمره ثابت میشه. الان یه حرفشون اینه که روایت ناظر است تشخیص الله اللهجه، نه ترجیح و احدر حجتین علی الاخرى ها. این پس روایت در باب ترجیح نیست. چرا؟ چون امام خامنوز به ان مجمع علی داره میگه. این یکی داره میگه طرف مقابل باسه. بعدم فرموزه انده مولو سلاسه امران بیانون رشدو خب امران بیانون رشدو یعنی چی؟ یعنی مشهور بیانون رشدو اون شازد نادر کدوم یکیه؟ نباید بش کلون باشه اون شازد نادر بیانون غیو پس مما باید امام وقتی تطبیق می کنه می کنم مشهور بیانون رشدو اینه حجر شال بیانون این اینه قیبه حجر وقتی در روایت تعمل می امام تمیز و حجهن و حجه رو میدن از این قید سدود در مقام سودور آخر اعبارشم مشهد و نظام فرض میکنه هر دو مشکول باشه، هر دو سال امام که برای اگه هر دو مشکول هر دو از من شده هر دو در مقام سودور. اما یه پیش تقییه هسته واقعه اگر یکی تغییر تقییه شده واقعه جواقعه شده، باز واقع میشه حجه تقییه میشه لا حج پس روایت تبک و سیاقش بیان حجت حجت نه بیان ترجیح اهدر حجت این حلال اخراخون درموند و شاید از سر این که در کلمان من اون تاریخ آهد آه سر این کتاب تا پردن و نه این روایت تو ترجیح نه من به شما تاریخ جلس کردم بعد ها مسئول ما هم زاره قبول در روایت ترجیه اما یه ضعیف السنده شاید احتمال اینکه اصحاب ما هم همین‌طور باشه که روایت در مقام ترجیح نیست روایت در مقام تمییز الحجج الله و جه است و تمییز الله و جه یه چیزه ترجیح احد الحججین علی الاخرى چیز دیگه این خلاصه نظریشون که فرضاً ان میگه